سلام به شنوندگان کانال هزار افسان از این کتاب زیبا داستان حسن تصادف رو تقدیمتون میکنم امیدوارم خوشتون بیاد و تا آخر داستان همراه من باشید یکی از نکات روایت حسن تصادف این است که روایتی کهن نیست و قدمت چندانی ندارد چرا که خالقان آن آم بر امور چون گرد بودن و لای لایب بودن زمین و همچنین برخی مصالح اجتماعی واقف بودند پنز نهفته درون روایت اشاره به این دارد که گیری پادشاه رو نه علم عالمانش بلکه تنها یک حسن تصادف تداوم میدهد حسن تصادفی که پاسخهای آخوند رو به تصورات خویش با پاسخهای مرد نظر ایلچی منطبق میکند نکته جالبی این است که پاسخها و تصورات آخوند کاملا منطبق بر وضعیت اوست و از این منظر او بیشتر یک شخصیت داستانی است تا یک قهرمان قصه تعابیر آخوند از نام خودش نیست نشانگر فروتنی یه تن و همچنین تعابیر کافی است تا وزرا و عمرای نادان را شگفت زده کند متن کامل این روایت با اندکی ویرایش از کتاب فرهنگ آمیانی مردم ایران می نویسی یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود روزی از روزا پادشاه ایران بارگاه خودش نشسته بود. خبر آوردن که ایلچی فرنگ با باج و خراج سالیانه اومده. ایلچی وارد شد. زمین ادب بوسید تحوه و هدایه رو از نظر حاضرین گذراند و ارز کرد. خراج سالیانه رو همراه ما بردم. اگه اجازه بدید ارز کنم. پادشاه اجازه داد. ایلچی ارز کرد. قبله عالم به سلامت باشه. جان نسار چند سوال دارم. اگه وزرای اولیا حضرت جواب سؤالات منو رو دادن معلوم میشه ایران از نظر علم هم به ما برتری داره و غلام خانزاد خراج و تقدیم خزانه اولیه حضرت میکرد. و اگه جواب ندادن معلوم میشه فقط قوه شمشیر و زورش از ما بیشتره. پس وقتی از حیث علم به ما برتری نداره انصافاً حق خراج گرفتن از ما رو هم نداره و در این صورت خراج نیست بلکه باجه. شاه اجازه بفرمایند فقط خراج امسال رو تقدیم کنم و سالای بعد رو معافه شاه قبول کرد. ایلچی سوالات خودشو گفت. وزیر دست راست وزیر دست چپ و عمرای بارگاه و همدیگه نگاه میکردند. وزیر دست راست برای عرض جواب چهه روز مهلت خواست. شاه چهل روزو به وزرا و عمره مهلت داد و قسم خورد که اگه جواب ندن تموم اونا رو میکشه وزرا و عمره مرخص شدن روز سی و دور هم جمع شدن و هیچ کدوم نتونسته بودن جوابی حاضر کنه پس با هم قرار گذاشتن شبانه فرار کنند نصف شب که شد همه از یه دروازه سوار اسب و پا به فرار گذاشتند اول طولوه آفتاب به دهی رسیدند. مکتب خونه ای دیدن که آخوند پیری نشسته و مشغول درس دادنه. دم مکتب خونه از از پیاده شدن و دیدند چوب بلندی دست معلمه که از سقف اتاق بیرون رفته و تنابی هم که توی دیوار بیرون اومده به شال کمرش بسته است. خیلی تعجب کردن و پرسیدند آقا این چوب چیه؟ این تناب از کجاست؟ جواب داد. همسر من تو خونه خیلی کار داره و منم مشغول درست دادنم. پس بر این که گنجشگاه گندمی که روی پشت بوم اتاق پنگ کردیم و خوشبشه رو نبرند من این چوب بلند و دستم گرفتم و از اتاق بیرون کردم و سرشم دستمال بستم. از طرف دیگه بچه من که شیر خاره پشت در همین اتاق تو گهباره خوابیده و تناب گهواره از دیوار به شال من بسته است. من موقعی درس دادن به بچه ها مجبورم تکون بخورم. از تکون خوردن منم این چوب تکون میخوره و گنجشگاه هم میپرن. و هم گهواره تکون میخوره و بچه دیدار نمیشه. بزرها و اومرا از عقلش تعجب کردن و پرسیدن اسم تو چیه؟ جواب داد نیمن بوقپن پشم پانزده همه به همدیگه نگاه کردن و چیزی نفهمیدن. گفتن آقا این که اسم نیست خواهش میکنم اسم شریفتون رو بگید. گفت اسم اصلی بنده منصور ابن موساست. ولی چون آدم فقیر و متوازهی هستم راضی نشدم اول اسم بنده من باشه و اول اسم منصور حلاجم من. پس اول اسم خودمو من گذاشتم. بعد دیدم سزاوار نیست که آخر اسم من سور باشه و اسرافیلم سور. پس قبول کردم که آخر اسمم بوغ باشه. این اسم من شد نیمن بوغیب. بعد برخوردم که نیمیشه با توازو و افتادگی من اول اسم پدرم مو و آخرش سا باشه و موسا کلیمولا هم همین اسم داشته باشه. ناچار گفتم، پدر من به عوض مو باید پشم داشته باشه و به جای سا هم پانزده. به خاطر همین اسمم شد نیمن بو پشم پانزده. او ذرا با یکدیگه مشورت کردن و گفتند کسی که بتونه جواب ایلچی فرنگو بده همین او بس باید اونو همرامون ببریم تا جواب بده و ما رو از خشم سلطان خلاص کنه بعد از کمی مذاکره قرار شد نیمبوقبن بو پشم پانزده با اونا بره با جواب ایلچی رو بده. همه با هم راه افتادند معلم زکر شده و علاقی سوار شد و خورجینی همراهش بود و هر چیز مثل دونه زغال یا میغ و مثل اونا رو تو راه میده جمع کرد و در خورجین خودش میزاشت. خلاصه همه جا اومدن تا به بارگاه رسیدند. پیاده شدن شدنون من بوغبن پشم پانزده زمین عدب رو بوسید. مدخو سنای شاه رو به جا برد و وزرها ارش کردن قبله آلم به سلامت باشه. توی این مدت هرچی فکر کردیم به چه زبانی سوالای ایلچی فرنگ رو جواب بدیم که برای دولت همیشگی شما خوب باشه رای پیدا نکردیم. نتونستیم راضی بشیم که خودمون جواب بدیم پس برای همین که هم امر شاهانه اجرا بشه و هم ایلچی جواب خودشو گرفته باشه و هم به دولت برنخوره این شخص رو که معلم یکی از مکتب خانه های دهاته برای عرض جواب همراه ها وردیم. شاه به همه اجازه که نشستن داد میمن بوغبن پشم پانزده روبروی ایلچی نشست ایلچی پرسید، وسط زمین کجاست؟ جواب داد، همین جایی که من نشستم. ایلچی کاغذی از جیبش آورد و با مداد دایره روش کشید. نیمن بوغ ابن پشم پانزده، بعد از اون که کم به دایره نگاه کرد، یه دونه زغال رو از خورجینش درآورد قسمت کوچیکی از دایره رو جدا کرد. ایلچی تخم مرغی روش گذاشت، اونم دونه پیازی رو روی دایره گذاشت. ایلچی با چهار انگشت خودش به اون اشاره کرد. نیمن بوغ ابن پانزده دو انگشتش رو به سمت اون دراز کرد. ایلچی از جاش بلند شد و تعظیم کرد و گفت قربان من جواب همه ی هم گرفته. گرفتم. الحق که این شخص استاده و خراج هم تقدیمتون بکنم. شاه از اون پرسید سوال و جواب چی بود؟ عرض کرد از او پرسیدم وسط زمین کجاست جواب داد همینجا یعنی زمین گرد است و هر نقطه وسط آن محسوب میشه بعد بهش گفتم این زمین گرد تمامش خاکه قسمت کوچیکی از اون جدا کرد یعنی خاک کمتر و آب بیشتره بعد پرسیدم زمین مثل مر از یه ورقه ساخته شده پیاز و نشون داد که نه مثل پیاز ورق ورق است با چهار انگشت گفتم اگه مثل من و تو چهار نفر دیگم پیدا بشن زمین درست میچرخه جواب داد به عقیده من همین دو نفر که هستیم کافیه. ایلچی مرخص شد. بعد از اون از نیمن بوگبن پشم پانزده پرسیدن سوال و جواب چی بود؟ گفت قبله عالم به سلامت باشه. وقتی پرسید زمین کجاست؟ چون میدونستم نمیتونه که اندازه بگیره گفتم همینجا و اگه میگفت نیست میگفتم پاش و اندازه بگیر بعد روی کاغذ یه گردی کشید یعنی من روزی یه گرده نون میخورم من تعجب کردم و نشان دادم که من به یه تیکه کوچیکش قانه گفت یه گرده نون رو با تخم مرغ میخورم من گفتم فقیرم تکه نون رو با پیاز میخورم فرنگی با چهار انگشت خودش منو تحقیر کرد و گفت خاک بر سرت. منم با دوتا انگشتم جواب دادم که چشات کور. شاه از این حسن تصادف تعجب کرد. خنده زیادی. معلم رو با انعام و مرحمت شاهانه مرخص کرد. امیدوارم همونطور که معلم سر پیری به دولت و مکنت و آرزوش رسید شما هم به آرزوی خودتون برسید منابع این کتاب برگرفت از حسن تصادف فرهنگ آمیانه مردم ایران صفحه 341 گردآورنده جهانگیر هدایت نشر چشمه چاپ اول 1378 کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقط ام ای نشانی وبلاگ ما m -E -H -R -A n d o u s t